سیزدهم ماه اوت هوا صاف بعد از ظهر کمی ابری صبح بعد ساعت پنج چشم گشودم همزمان متوجه مسئله زغال سنگ ها شدم هنوز غذاخوری کارخانه باز نشده بود به مسئول آشپزخانه گفتم داخل بلغور گندم سبوستار کمی آبجوش ریختم و خوردم برای نهار نان خشکی را برداشتم که زیر کارطونی خالی در انبار مواد غذایی دیده بودم. راهی برای به دست آوردن زغالسنی نبود. جایی هم برای رفتن نبود. فقط مانند بی ها و ولگردها عجله داشتم. با این تصمیم که داخل قطار فکر خواهم کرد، سوار تراموای آزمه هیروشیما شدم. باد صبحگاهی نمیوزید و دود سوزاندن مرده از پایه و ساحل رودخانه که برای سوزاندن مکان‌های بسیار مناسب بودند. به هوا بلند شده بود. با نزدیک شدن به دشت سوخته ی هیروشیما دودها رقیق تر شدند. مجروحانی که زخم کاری داشتند از داخل شهر به بیرون فرار کرده و خیلی زود مرده بودند. مجروحانی که از داخل شهر به مناطق دورتر فرار کردند حل دیشب مرده بودند. داخل تراموا مرد میان سال کناریم درباره اخبار صحبت می کرد. با توجه به حرفهای او نیروهای شوروی نه تنها منچوری را اشغال کرده بودند بلکه مثل موجی لگام گسیخته به جنوب حرکت کرده و به حریم کره شمالی هم تجاوز کرده بودند شوروی هم بمبی مشابه پیکادون داشت اگر ارتش آمریکا خاک اصلی ژاپن را بگیرد تمام مردان ژاپنی را اخته خواهد کرد حتی تمام افراد سالمی که بعد از پیکادون به هیروشیما آمدند مردند این به خاطر وجود گاز سمی در پیکادون بود. این حرف واقعیت داشت که به یکی از چترها گاز سمی و به دیگری بمب وصل کرده بودند. قبل پیکادون در هیروشیما صد 190 پزشک بود که حدود 120 نفر آنها مردند. مردی با چهری عادی بود که شلوار کار فرسوده و کهنه ای به ظاهرا این حرفها را از جایی شنیده بود و به خوبی درباره آن میدانست. اما بیشتر این اطلاعات اشتباه بودند. یاد داشته اضافه شده. وقتی وارد آوار سوخته شدم، نور خورشید بر خورد شیشه های سطح راه مونعکس میشد. انعکاس آن به حدی بود که نمیتوانستم سرم را مستقیم بگیرم و جلو بروم. بوی تعفن جنازه ها نسبت به دیروز رقیق تر بود. اما در جاهایی که خانه ها ریخته و تکه های آجر بر هم بود، بوی بد همچنان شدید و گله مگس ها به شکل کاملا سیاه جمع شده بود. به گروه های امداد که مسئول ردخ شهر بودند، واحدهای نظامی هم اضافه شده بود. افرادی هم با لباس تمیز و لباسی که هنوز به عرق آلوده نشده بود، میان جمع بودند. در حالی که بی هدف قدم میزدم، آزم خرابه های شرکت زغال سنگ شدم. هنوز هفتهش در اعلامیه افراشته وجود داشت. به هر کدام نگاه میکردم فقط رویشان نوشته شده بود محل دفتر موقت را اینجا بنویسید. یکیشان هم نتیجه نداشت. شاید همه آنها از بین رفته بودند. در حینی که این افکار به سراغم میآمد به یاد آوردم زمانی کنار راه حساکا زغال سنگ روی هم انباشته شده بود. مکانش جایی بین ایستگاه حساکا و ایستگاه یا در جایی به نام اودا بود. از بهار امسال تا تابستان، سه بار از جاده حساکا رفت آمد کرده بودم که هر سه بار زغال سنگها را دیده بودم که چون کوهی برهم تلنبار شده بودند در شرکت ما کنف‌ها را با آب جوش میشویند و آنها را به ماده اولیه منسوجات تبدیل می کنند برای تهیه ماده اولیه به اندازه یک هفته تا ده روز زغال در انبار ذخیره شده بود تا روز بیستم این ماه به اندازه کافی زغال سنگ وجود دارد اما بعد از آن موجودی واقعا ته می کشد. چند بار برای جویا شدن عوضا سراغ رئیس شرکت هماهنگ کننده رفتم اما نتیجه ای نداشت. مسئول زغال های انبار شده کنار راه را جستجو و با او مذاکره کردم. روستای اوداد درست مقابل ساحل فرویچی و جایی قرار دارد که جریان اصلی رود جدا می شود. خطوط گبی شاید در آنجا کمی پرپیچ و خم باشد اما از جایی خنک در بایه می می‌گذرند. رودخانه درست مقابل ساختمان شرکت در فرعی چیجاری است. پس با گذشتن از رودخانه می‌توانستم برگردم. همان موقع متوجه شدم بسته نهارم را روی سنگ سکوی شرکت زغال سنگ جا گذاشتم. بدون توجه به این مسئله قدم زنان پیش رفتم. در سایه درختان زمین‌های خالی کنج شالیزار و غیره، آلونکهای های آوارگان دیده می شد. با جمع کردن و روی هم قرار دادن الوارهای قدیمی، ورقهای حلبی، پوشال، هسیر و هر چیز دیگر که به دستشان می رسید این آلونک ها را درست کرده بودند. شاخه درختان و چوبهای رخت خوشکنی را هم به کار برده بودند. حتی از تنی درختان سرپا هم جای ستون استفاده کرده بودند. روی سنگی حلبی را به شکل کوهی وارونه خم کرده و جای ماهیتابه استفاده می کردند. شاخه های را شکسته و کنار آلونک ها روی هم انبار کرده بودند. یکی هم داخل آلونکی بود که بهتر است فقط به آن سایبان بگویم. سنگ ها را روی هم گذاشته، پرچه سفید رویش پهن کرده و قوطی خالی را با گل های خود رود از این کرده بود. داخل این آلونک شبیه سایبان، پیرزنی، حسیری انداخته و به پشت خوابیده بود و چه مشترک تمام این آرونک این بود که مقابل در ورودیشان برگهای های درخته درخت صدر و صرف پند کرده بودند بیشک این کار برای فراری دادن پشه ها بود به روشی که کشاورزان از کود خاکستر درست میکنند کنند خشک های خشک را آتش میزدند تا شعله بر نشبد. بعد طوری با خاکستر زخیم روی علف ها را می که حتی در طول شب هم از آن دود بر میخواست. به دو سه آلونک نگاه کردم، مجروحان در آن خوابیده بودند. در یکی از آنها با اینکه وسط ظهر بود، دود برای فراری دادن پشه ها بلند بود. خانی عجیب بود. کنار یکی از آلونک ها گودالی کنده و داخل آن صفه ای آینه پهنی را گسترده و در آن آب ریخته بودند. دختری جوان از داخل آتش ریگ هایی بر می داشت و یکی یکی توی آب میانداخت. با توجه به شنیده ها، این روش آماده کردن حمام کوهنشینان بود. واقعا هم که آن خانه مانند خانه کوه بود. چون میشد برای استهمام از آب رودخانه نزدیک آنجا استفاده کرد، پس حتما برای زخمیها آب گرم می کردند. در ایستگاه هساکا زخمی های زیادی منتظر قطار بودند. از مسیر خارج شدم. بدون سر زدن به ایستگاه از مقابل آن گذشتم و باز در امتداد جاده قدم زنان جلو رفتم. زغال سنگ هایی که دنبال آنها بودم سر جاشان نبودند. محل کاملاً مسطح و هموار شده بود. وقتی از کشاورزی که خانهش در آن نزدیکی بود سؤال کردم پیرمر جواب داد که آنها در یک شب تمام شدند. زمان ماجرا را که پرسیدم جواب داد شب روزی که هیروشیما بانباران با شد. دوباره وقتی پرسیدم متعلق به کی بودند جواب داد اول انبار متعلق به نیروی زمینی بود اما نمیدانم دانم سنگ ها مال چه کسی بود چون انبار متعلق به نیروی زمینی بود پس همه از دست زدن به آن خودداری می کردند آیا سنگی نبود که کسی در بازار سیاه خریده و انبار کرده باشد؟ حتی این سؤال را هم پرسیدم پرسجوهایم باعث شد سرانجام پیرمرد به من مشکوک شود چون زغالسنگ حالای بسیار مهمی است، فقط این را گفتم و آنجا را ترک کردم. با عجله زیاد درست تا ساحل مقابل فرویچی قدم زدم. وقتی از آبهای کم آمخ گذشتم و به ساحل دیگر رودخانه آمدم، کسی در سایه سخری از پای افتاده بود. آن مرد به پشت افتاده، سفیدی چشمهایش مشخص و دهانش باز بود. شلوارش رو روی شکم بالا و پایین میره. روی نیمی از بدن آن مرد که نفسش به شماره افتاده بود، سخره کناری سایه میافکند. سمت دیگر سخره دو جنازه با سرهایی سوخته دیدم. خواستم بی سر سرا از آنجا رد شوم، اما چون ساحلی پر از سنگ بود، نتوانستم صدای تق, -تق کفش را خفه کنم. با اینکه به خاطر پیکادون جنازه های فراوانی دیده بودم، اما هنوز هم از جنازه میترسیدم. قروب خورشید خیلی درخشان بود. آب رودخانه نور را منعکس می کرد. بعد سنگ ها ساحل ماسه شروع می شد و بعد هم جریان آب میقتر. در حال کندن لباس هایم جملات حاکوت ها سو را زمزمه کردم. چه ما جلو باشیم یا دیگران امروز باشد یا فردا، قبل دیگران یا بعدشان، می توانیم بگوییم چه بسیارند قطرهای روی برگی که زودتر از قطرهای روی ریشه ها می چکند. پس روی نکو و سرخ رنگ صوبگاهان در عصر تبدیل به استخوان سفیدی می شود سریع باد ناپایداری می تا به آنی چشمی بسته شود نفسی امیق قط شود تا روی نکو بیجان شود پاتابه ها را باز کردم کفش هام را کندم و شلوارم را درآوردم همه آنها را لای پیراهنم پیچیدم و با کمربند بستمشان بعد راحت گرفتمش و از رودخانه گذشتم حتی اممیقترین قسمت آبی که آفتاب بیوقف بر آن میتابید از ران هم تجاوز نمیکرد با این همه به خاطر سنگ‌های کف رودخانه و گیر کردن پایم به آنها چند باری نشیمنم خیز شد. ساحل چپ این طور نبود، اما در ساحل راست مکان‌های موقت برای سوزاندن مرده وجود داشت. از چندتایی از آنها هنوز دود بلند می‌شد. این وضع چه در بالادست رودخانه، چه در پایین دست دیده می‌شد و دود سمت آب جریان داشت. با تمام قوا به سمت ساحل شنی دویدم از لبه رودخانه بالا آمدم و به کشت زارهای سبز دوروبرم رفتم که به خاطر بوی متراکم علفها خفه کننده بود شورتم خیس بود پس لخت از کرد رد شدم با گذشتن از ارز خیابان فوندوشی در فروئیچی به خانه موقتمان برگشتم انوس خورشید غروب نکرده بود با اینکه لخت بودم آبران از دیدنم تعجبی نمی کردند. کم نبودن مصیبت زدگانی که لخت فرار کرده بودند. هی، hey, برگشتم. با گذشتن از رودخانه. عملا رفتم توی آب. خلاف آنچه فکر میکردم جریان شدید بود. آی، گرسنم. به شیگه کن نگفتم نهارم را در محل آوار سوخت جا گذاشتم. اگر میگفتم، به خاطر دو بار بی احتیاطی که کرده بودم صدایش را بلند میکرد. در حال شستن بدنم در نهر پشتخانه با صدای بلند جریان برگشتنم را در امتداد خطوط گبی برای شیگکو تعریف کردم درباره آن حمام هم که با پهن کردن صفههای عایق رطوبتی درست کرده بودند اختلاط کردیم شیگکو کیمونو نخی زیرپوش و شال کمری آورد و با چهرهی متفاوت گفت رئیس کارخانه برای دیدن شما آمدند به فکر کردم. حتما برای تشویقم در ماجرای حل کم بود زغال سنگ آمده. خیلی طبیعی بود. آمدنش خیلی مهم بود. پس با سرعت هرچه تمامتر کیمانو نخیم را پوشیدم و به اتاق نشیمن رفتم. فوجیتا رئیس کارخانه با لباس رسمی ژاپنی که به ندرت می پوشید روی پله چوبی ورودی نشسته و ظرف را کنارش گذاشته بود. بسیار خوش آمدید. تصمیم داشتم بعد شام برای گزارش بیایم. اما در مورد زغال باید بگویم امروز هم بیفایده بود. بله. از صبح پیگیر حالتان از همسرتان بودم. اما مسئله این است که همسر و دختر خوانده‌تان میتوانند به زادگاهشان برگردند. شما هم آسیب دیدید. پس میتوانید اجازه رفتن بگیرید. شام امشب شما و سهم خودم را آوردم. فکر کردم اینجا با هم شام بخوریم. شام غذاخوری شرکت هست پس خیلی فقیران است خیلی زود معنای این حرف را فهمیدم من و یاسوکا در شرکت کار می کردیم و در غذاخوری شرکت غذا می خوردیم ولی رفتن به غذا با شگکو نه فقط برای من که برای یاسوکا هم سخت بود از زمان کمبود مواد غذایی شریک کردن غریبه در غذا بسیار غیر اخلاقی بود نمیدانستیم جنگ تا کی ادامه خواه؟ فریاد آغاز عملیات جان تا آخرین نفر از صد میلیون هم بلند بود. بنابراین قرار شد شیگه همراه یاسوکا زودتر به زادگاه برگردند. رئیس هم میخواست همین را بگوید. بی هیچ حرف و حدیثی موافقت کردم. رئیس لباس رسمی ژاپنی داشت و ظرف غذا همراهش شاورده بود. پس فهمیدم از یاسوکا رضایت دارد. رئیس را به اتاق راهنمایی کردم. رئیس با ذکر این جمله که یاسوکو بسیار به ما کمک کردند از او تشکر کرد. شیگکو و خود یاسوکو هم از رئیس تشکر کردند. ظرف غذا بسیار بزرگ بود. شیگکو در آن را برداشت. علاوه بر غذای قضا غذاخوری، یک بطری بیش از نیم لیتری و یک کنسرو گوشت گاو برای تشکر داخل آن بود. دو گوجه فرنگی هم بود که کمی تازگی خود را از دست داده بودند. دیدم داخل بطری هم پر نوشیدنی است. مدتها بود که چون این چیزهای تجملی ندیده بودم. برای همه چیز بسیار متشکریم. شیگکو شیگه هایش را روی تاتامی گذاشت و چون رو به روی رئیس کارخانه بود با لحجه تاکیایی گفت بسیار متشکرم. یاسوکو هم دست هایش را روی تاتامی گذاشت و همین را تکرار کرد. دهانم آب افتاده بود. اولین بار بود که رئیس را با لباس رسمی ژاپنی میدیدم. در حالی که بسیار معدب نشسته بود، قسمت زانوهای لباس نخیش با پارچه مربعی به ابعاد شش متر مشخص شده بود. نوشیدنی کالای نایابی بود که لطف کرده آورده بود. به رفوی قسمت زانوهایش نگاه می کردم. به شدت کم تاغت شده بودم. آدم خماری مثل رئیس می فهمید که خمار هستم. رئیس، داخل آن بطری؟ الکل است. از تنتوره تلخ تقدیر شده به آن سیروپ درست شده به روش داروسازی ژاپن هم اضافه شده است حرف رئیس این بود که آب و شکر قلیز را در داروسازی ژاپن سیروپ میگویند سیروپ 60 درصد شکر سفید در سی درصد آب مقطر است پزشکان برای کم کردن تعم تلخ داروها از آن استفاده می کنند تنتور تلخ دارویی است که پودر بیخ کوشاد پوست نارنج و غیره را در الکل ژاپنی وارد و آن را تحت فشار صاف می کنند. چه تنتور تلخ، چه سیروب در داروخانه‌های شهرهای بزرگ فروخته نمی‌شوند، اما در داروخانه‌های شهرستان با قیمت توافقی به فروش می‌رسند. رئیس هفته پیش به زادگاهش رفته و از داروخانه آشنا تنتور تلخ تقدیر شده تهیه کرده بود. سیروب هم خرید و به جای شکر استفاده می‌کرد. واقعا گنجی است که برایش زحمت کشیدید الکل از پس آب میآورم شیکه کو که از جایش بلند شد رئیس جای نشستنش را عوض کرد و گفت نوشیدن تنتور تلخ بدون تقدیر خیلی سخت است اما اگر تحمل کنی و آن را با آب مخلود کنی هر پیمانش می تواند احساس مستی به وجود آورد عید سال نوع امسال تقدیر نشده یا آن را خوردم هرچند مست شدم اما فردای آن اسال گرفتم با اینکه داروی معده است، اسهال شدن خیلی عجیب بود. یاسوکو محتویات ظرف غذا را یکی یکی روی میز چید. غذای غذاخوری کارخانه پنج عدد تمپورای برگ درخت توت، سوپ میسو، نمک طعام، ترشی سبزیجات و بلغور گندم سبوسدار بود. برک های درخت توت به پیشنهاد مسئول آشپزخانه از توتستان کنار کارخانه جمع‌آوری شده بود. به خاطر جنگ نوغانداری ممنوع شده بود. شاخه های درختان توت قطع و زیر آن سبزی کشت میشد اکنون درختان از محل بریدن شاخه ها جوانه زده و برگ های نورسی داشتند. یاسوکو گوجه فرنگی ها را به آشپزخانه برد. نصف کرد در بشقاب چید و آورد. کنسرو گوشت گاو را به چهار قسمت تقسیم کرد. چهار نفری داره میز نشستی. یا سوکو همانطور که رئیس به او یاد داد فنجان ها را پر کرد انگار به کالای فوق العاده گران قیمت دست میزند بسیار با آرامش عمل می کرد رئیس با هاشی از چوب صدر محتویات فنجان را هم زد من هم همین کار را کردم قاشق می آورم قاشقی که با آن برنج و کاری می خوریم وقتی شیگه کوبر رئیس گفت نه nah, خانم من حتما باید با هاشی آن را هم بزنم در مورد مخلوط کردن آب و از روش سی درصد الکل و هفتاد درصد آب استفاده می کنیم اما ایدئال و واقعیت کمی در خوردن فرق دارند رئیس این را به شکل مزهکی گفت و کمی نوشیدنی در فنجان خودش ریخت خب آقای رئیس می نوشیم اما قبل از آن برای سلامتی دعا می کنیم و به سلامتی می اما با فنجان زیاد جدی نیست شیگکو و یا سکو بدون اینکه بنوشند همانطور که رئیس گفت زودتر مشغول غذا خوردن شدند اولین بار بود که تمپورای برگ توت میخوردم نمک زدم و خوردم بسیار خوشمزه بود آقای رئیس لطف کردند و برای خانواده ما چنین محفل شامی خودمانی تدارک دیدند اما اگر به آخرش نگاه کنیم می‌بینیم که شبیه مجلس خداحافظی شد که بیشتر آن تکرار حرفهای دلتنگ کننده بود در حقیقت رئیس هم امروز به محل آوار شرکت سنگ رفته بود بعد سطفان دوم ساساتاکه را در شعبه تأمین لباس ملاقات کرده بود وقتی به نتیجه نرسید به ملاقات دکتر کویما آشنایش در بیمارستان سازمان ارتباطات رفت دکتر بسیار گرفتار مشکلات بیماران آن بیمارستان بود و از ملاقات حضوری خودداری کرد رئیس هنگام سیگار کشیدن در ورودی بیمارستان از صحبتهای پرستاران نام صحیح پیکادون را فهمید. رئیس کارخانه با چهری رنگ پریده و مست گفت نام درست پیگادون بومبه است. ظاهراً انرژی تشعش روی فوقلادهی پخش می کند. همونطور که من هم در بقایای یا آوار دیدم بر سفال‌های های ریخته سقف‌ها. عباب مثل دانه ارزن ظاهر شده. رنگ سفال ها هم مانند نکش اولی آتش قرمز شده. چیزهای غریبی رخ داده. ظاهرا تا هفتاد و پنج سال بعد در هیروشیما و نگاسکی گیاه هم رشد نخواهد کرد. اولش نام پیکادون سلاح جدید بود. بعد به بمب جدید. سلاح سری، بمب جدید با توانایی فوقالعاده و بمب ویژه با قابلیت‌های بسیار بالا تغییر کرد تا اینکه امروز دانستم که نامش بمب اتمی است. اما این موضوع که تا هفتاد و پنج سال بعد گیاه نمی‌روید احتمالاً باید شایعه باشد. من در جایجای جای آوار سوخته گیاهانی را دیدم که قد کشیده بودند. وقتی این را به رئیس گفتم جواب داد بله من هم دیدم زیادی قد کشیدند ترشکهایی را دیدم که به پایین خم شدند مقاله نویسندهی به نام ماسامونه هاکاچورا را به یاد آوردم این مقاله به هنگام پیمان اتحاد بین سه کشور در روزنامه یا چاپ شد نویسنده نوشته بود هنگام تماشای سخنرانی هیتلر در اخبار جز قرش ببر توانست توصیف دیگری داشته باشد. آن زمان به ندرت کسی از هیتلر بد میگفت. سازمان جوانان هیتلری به ژاپن آمد. فرماندارانی مخفیانه از آن تقلید کردند و واحدهای جوانان تشکیل دادند. در اوج گرایش شدید عمومی به این جریان شخصی به نام ماسامونه چیزهایی را که دوست داشتم نوشت و تأثیر شدیدی بر من گذاشت بعد از آن به کارخانه هدوات نظامی وارد شدم در حینی که بر افزایش تولید متمرکز شده بودیم فکر می کردیم هیتلر بالاخره در جنگ پیروز خواهد شد اما از زمانی که هیروشیما بمباران شد فرق برگشت و همه فکر کردیم پیروزی محال است با وجود این به شکل رسمی هنوز موج تقلید از آن عقیده عمومی وجود داشت بنابراین اعلامیه تاکانو، فرماندار هیروشیما را که خطاب به مردم شهرستان در هفتم ماه اوت صادر شده بود، پاک نویس و برای اطلاع در کفشکن شرکت نصب کردم خسارات اخیر با وحشیانه ترین حمله هوایی ای برای از بین بردن روحیه جنگندگی مردم ما بود مردم هیروشیما هرچند خسارات و صدمات بمباران بسیار زیاد بوده اما این طبیعت جنگ است محکم باشید و بدون ترس به کار نجات و کمک ادامه دهید چنان که در گذشته هم اینطور کردید ارتش همچنان به انجام بزرگترین پشتیبانی ها واداشته خواهد شد. سریع به محل کارتان برگردید. جنگ یک روز هم متوقف نخواهد شد. روزی که این اطلاعیه را نصب کردم روز نهم ماه اوت و اندکی قبل ساعت ده و پنجاه و چند دقیقه صبح بود یعنی زمانی که پیکادونی دیگر در نگاساکی انداخته شد. بعد بمباران نگاسکی و شنیدن جزئیات دوباره به آن دقیق نگاه کردم. عبارت واداشت خواهد شد آن اطلاعیه از جمله ارتش همچنان به انجام بزرگترین پشتیبانی ها واداشت خواهد شد داخل کروشه قرار گرفته بود. این شیطنت کسی بود. روز بعد یکی آن را کند و اطلاعیه دیگر نبود. بعد روی آن دیوار تخت کوب رنگ شده با مداد، درشت نوشتند، شکم خالی نمی بجنگد به جنگت. رئیس هم باید به این نوشته های انتقادی توجه کرده باشد. اما درباره آن هیچ حرفی نزده بود. من هم آن را پاک نکردم. به همین منوال به پانزدهم ماه اوت رسیدیم. بعد از اینکه که امپراتور پایان جنگ را اعلام کرد، دوباره نگاهی به آن انداختم. کسی با پارچه گردگیری نوشته را پاک کرده اما اثرش باقی مانده بود. آن کروشه و جمله انتقادی نشانگر احساسات کارگران کارخانه در طول جنگ بود. همچنین فکر می کنم، روش پاک کردن جمله انتقادی هم همین بود. یادداشت اضافه شده. در حالی که تمپورای برگ درخت توت را به عنوان مزدی ساکه می سفنجان الکل سی درصدی نوشیدم مشروبی بود که بعد از مدتها می نوشیدم پس مست شدم اما شور و حالی پیدا نکردم رئیس چند برابر من نوشید هرچه بیشتر می نوشید رنگ پریده تر می شد از روش همیشگی صدفان دوم سستاکه در شعبه تولید لباس بدگویی کرد هر دوی ما به خوبی آگاه بودیم ما که برای راه انداختن کارخانه مقابل آنها به وضعیت خفتباری داده بودیم. آشکار شدن ترس انسانها چیزی است که از آن متنفرم. شاید برایشان ما عروسکهای داری بودیم. رئیس کارخانه غذای داخل کاسه را تا آخر خورد و هنگام خداحافظی از سر نومیدی و ناچاری گفت فردا پوشا که مردم منطقه کوگا را در بازار سیاه می فروشند بعد از آنکه نشیمنش را روی پله چوبی گذاشت گفت لباس مردم منطقه کوگا درست مانند لباس رسمی پیروان یکی از فرقه دینی جدید است گفت بر درخت حیات معبد اصلی این فرقه زرد لانه ایلانه کرده و والدین این پرنده ها هر روز کرم سبز به آنجا میآورند آورند هی hey, می زرد پره چه میگوید و چه می خاند? رئیس آستین کیمونوی نخیش را جمع کرد و با صدای بلند گفت اگر بخواهم در یک کلام بگویم در حال و هوای جشن آهو میخواند ای hey, هی دختر خونده ی آقای شیزوما به زادگاهت که به سلامت برگشتی یک سطر نامه بفرست چشم این کار را خواهم کرد یا این را گفت اما آقای رئیس زردپره ها در زادگاه ما میخانند بنکه، بشخاب بیار سرکه بنوشیم یعنی چه؟ باید خیلی کتاحتر بخانند وقتی من بچه بودم زردپره ها چینچیکو بیست و هشت روز بله این کتاها خوبه هنگام کودکی‌ام زردپره‌ها چین چیکو 28 روز می‌خواندند. کودکانی صدا را تقلید می‌کردند و در ادامه آن فریاد میزدند هویج و ریشه بابا آدم بد است. توفوی سرخ کرده بزرگش خوب است. حتی اکنون هم نمیدانم چه معنایی داشت. می‌خواستم قوانین نظارت بر روشنایی را رعایت کنم. اما وقتی میز غذاخوری را مرتب می کردیم، مسئول نظارت آمد و تذکرده بود. وقتی همسرم برای شستشو کنار نهر کوچک پشتی رفت، چراغها را خاموش کردیم.